زي فائو وصل يا مولانا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا الرسول دا وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين وعاشوا دائما فاعلا عبادهم اجمعين اللهم اغفر لنا جميع از صداجه به بحث خودشت خبر بعد از تر روز به این مسئله چهار و تو کاثریه مرحوم شیخ و دیگران و بعد از شیخ قبل شیخ با عنوان دلیل عرض چهار دلیل دلیل دیگه که در وجهد خبر ما این مطلب رو سابرا نمی شده کردیم به خاطر که تنظیم برس هستم که دلیل چهار دلیل این <تصفيق> همس این مسئله سابقه داره در اصول و قرارتو این مسئله اینه که در شریعت مقدسه ادهی معتقه بودن زن با حوانه خود زن و ادهدهی نقل کردم که بعضی از اینها رو مثل انصدار و اصحاب ما در زید حجیده بحث خبرم اومدن و که خبر مفید زنه و نظر دو بخصه یه بخص این هست که زن در احکام شرعی حجت یه بخص اینه این که خبر به عنوان حجت و ادعا شده که این حکم عقل ما سابقه هم از کردیم اجمالا هم از میکنیم که چین چیزی رو با عنوان حکم عقل ما نداریم راشه به حجیت زن که زن موقعا هم باشه از مجموعه شواهدی که الان در دست داریم مفید رسول و اتمیان و قرفی است. این موضوع قرفی و در دیگه این موارد دوجوب و اصول احملی مشکلی ایجاد نمی کنه. تا به کردن مشکلی ایجاد نمی این خلاصه اون بحث راجبه زن راجبه شورم از که ما به حکم عقل راجبه و یک چیزی که طریقیت صرف داره نمی تونیم اثبات بکنیم. چون خبر واقعه طریق صرفه طریق تابه به اصطلاح در تعاویر مرمونایی تابه اون مطروحه تابه اون واقع خودش به عنوانه حسیتی نداره هرون نمیاد بگه این طریق به عنوانه حجت بله اگر موضوعیتی باشه چرا مثلا بگه قول پزشک حجته یا قول قاضی حجته یا قول اسپاندار مثلا حجته چون موضوعیت داره. اگر موضوعی باشه چرا اما اینکه طریق صرف باشه مثلا زراره می خدمت امام بود بگیم طور فهمنده و کلام کلام زراره طریق صرف باشه نه به با عنوان یک قول فقیه هم همینطور قول مهندس هم همینطور قول علی قرب هم همین طور اینو درسته اینو ممکن است مثلا ما اصولا کاروردی به عنوان اهل که اینجا مراد اهل اهل عملی برای حوزه جامعه است میشه با. ناعقل در در این عقل, عقل اگه باشه عقل عملیست میشه چون یه موضوعیتی داره فرض کنید اگه خود بازی حجت نشه بگه من تو به علمم اختلاف در جامعه از بین نمیده چون میگه من علم بذار کردم فرضاً میگه علم بذار نکردم من جو اختلاف برقرار میکنه و طبیعت عقلها بدین است در جامعه با اختلاف نباشه و هر نحو ممکن اختلاف رو حل بکنه اینو معقوده اما اونجایی که طریقیت صرف داره عقل نمیتونه اونجا خب میکنه ولیذا اگر بخواییم اصولا به دلیل عقلی تمثل کنیم در باب خبر یا باید این نوع تسلیم قاعد بشیم بگیم همین که خبر میاد یک مسئله که ادراس میشه یک خب میشه. هیچ چیزی باید تصبر بکنیم که به خاطر اون به اون نقطه باشه یا یا باید اخبار بشیم یک نوع تحسیبی هست. بله، یا با اخبار این که اینکه ما در باب احکام شرعیه یک نوع انقلاب تکلیف داریم. این مخصوص چرا؟ مثلا ما اولا مه بودیم به باب احکام دهی، اما بعد از وجود اخبار و با تکلیف از آن فرزند ما مکلف هستیم به متابعت اخبار نه به واقع اخبار اگر اونجوری چرا هنو بدی نیست میشه واقعه اجمالی مثلا درسش کن اصولا من میخوام وجه اول دوم سه رو بزنم اختیاری تو این وجود نداره اون نکته و اساسی در اینجا اینه عقل در این جور موارد که یک مطلب طبیعیت صرف داره چیزی نمیاره ورود پیدا اون اونی که مطلوب احکام ایدالی است اونی که شما در دست دارید خبر باردی که سر... رفتی به هم ندارد خریق سرس هست و هم احکام ایدالی علم ایمالی شما دلید عقلی خاری نمی کنه بله اگر شما یکی از این دو مطلب رو قادم شدیم، یکی اینکه خبر موضوعیت داره مثلا زراره که مطلبی بگه واسه این که مطلب مطلبی گفتی مثلا یا قاضی مطلبی گفته یا اگر فسوه محمد و مطلبی گفت مثل این که پزش گفت ولی نه فسوه دار اون فتوا درست فتوا نه مثلا گفت امامی جورتر بوده خب بنای اصحاب ما این نیست که این نحوه از تصیب باید باشه برای نحوه تصیب ببنه مسئله سلوکیه ما باید شدیم که اگر بخواد خبر واقع جت بشه که به نظر ما هم بوجهتی خیلی نکرد بوجهت یه واسطری مسلحتی داره یک نکته ای باشه به اذرا بدون مسئله با ابن قبه اساسا مستحیل تعبده به هر رو به زن مسترید جزء محالات یعنی میشه واقعی باشه با این تائید جایی به واقعی میرسید جایی نمیرسید و مصلحت به واقع الزامی باشه خب نمیشه تفیید مصلحت به واقع این رو این مطلب پس بنابراین یا به این ارتقا که خب شاید ظاهر در این کلمات و ها ها و, و, و شیعه که ما اصولا تکلیفمون اونو این عدام اصلا تکلیف مهمه این اقراض ما از ابن هزمان از علمان احن سنت او حتی در زیر تفسیر در مناسبت میگه نه نه نزد نه زیر همه آرام نیست مارواز سره سره همه نبیه روزه خب این حرف نامرگوی به این با تکلیف ما از واقع اول شد شد به معدلات خبر درست داریم علم اجمالی معصد به الله این اولا سانی اگر اگه گفتیم نه درست علم اجمالی حتی با این تغاضی در فرمی یک اطاقه از اخبار داره کسوسیتی هم راوی یا به اصطلاح ما عمل اصحاب روی شده و اگر عمل به این بکنیم دیگه تقریبا چیزی نمیمونه خب اون علم اجمالی ما منحل میشه تا با بات اثبات موکنی که علم اجمالی منحل نشه تأثیر بکنه. پس هم از سوکه به دقیقه احمده در مسئله حجر خبرگاهه مسئله درستی نیست و جا، کار به جایی نمیده این خیلی مختصدیه چون عده نوشته اول سالی سالست اون نقطه فنی رو ارز کردم که دیگه نقطه ن موند ادله کسانی که خبر و حجیت نمیدانند. ما عدله عدم و هجیت رو گذاشتیم برای بعد چیست ادله استداها عدله حجیت اگر آقای نگاه کن مرحوم در این مصباح اصولشون شماره جلد دو که با این تسلسل اخیر 47 بشتادن در جلد دوی مصباح و اصول از صفحه قدر ایشون ادله قائلین به مجمع خود جیست تا 188 این صفحه ایشون عورده البته ایشون ادله را اول اجماع آوردن بعد از خنبی این که روایات مبارکه و بعد هم آیات ما به ترتیب ایشون اول اجماع رو می خونیم. بعد آیات رو می کنیم روایات رو چون خیلی مجمل آوردن اصلا ذکر نکرده این ندادن روایات رو میگذاریم بعد میخونیم که هم خود روایات رو از اون مستر بکنیم خود مستر توضیح بدیم هم بعد به اصطلاح جوابیش اگر قاعده اگر دسته اصبات میشه چیزی از اون درمیان که اعتماد کن ایشون دعوای اجماع علا عدم حجیت رو خبر بعد الان ما اجماعات مناقشه ایشون نکنیم بردونی محلشی الان این اجماع رو همچون در کتاب های حوضه معروف بود سید منتزا دیگه ایشان اسم نمی همین همین اکتفاق که سیده منتزا اسم در اول اجماع علاقه موجود خبری توزی نیگه که اجماع ایشون و فیه بعد اشکال متعام عدم ادم اجماع منقول فی نفسه که اجماع منقول خود نیست تازه اجماع ما هسته بیشن با یه مشکلاتی وجوده رو ایشون ننشن منقول یعنی به اصطلاف خیرن منهول قصد دارم سانی هم اندرکش ما انه من افراد خبر الواهد بل من احس احس یعنی پسته احس افرادی به اعتباری کنونی به اعتبار و کنونی اخبارم حدسی قول اما قوله معصوم به خلاف خبر الواهد المستلح فرنهوت اخبارم حسی هم و من عدم حجیت الخبر یست بخواه عدم حجیت اجماع منغول این یک اصطلاحی داره مایه از وجودی عدم ها و محارم این اجماع اگر باشه یعنی خبر حجیت نیست این معناش این دیگه اگر خبر حجیت نباشه که از افراد خبر هم همین اجماعه این اجماع هم باید حجیت نباشه چونم خبر ارز کردم توبیحاتش رو مفصل ارز کردید از وقتی که بحث اجماع در دنیای اسلام مطرح شد، اجماع به عنوان یکی از مصادر تشریع مطرح شد در میان اهل سنت. در اجماع خصوص اهل مدینه را گرفتن، اونم به عنوان مصدر تشریع اشتباه نشد. یعنی اعتقادشون این بود که اگه علما اتفاق کردن، این خودشه که مسئله از قرآن و سنته. همچون که قرآن یکی از مصادر تشریع، اجماع هم یکی از مصادر تشریع. این من توضیحات کافی فرست کردم و بعداً اجماع اهل مدینه رو ها حالا ریشه های این کلام در کجاست؟ ما ارز کردیم یکیش به کلام این مسعود برمی‌گرده، یکیش به کاری که عمر انجام داد. این و بعداً هم از علمای مدینه از بزرگان علمای مدینه این مطلب رو جان داختایم که خصوص مدینه یه به همبریت خصوصی داره که اگر فوقهای مدینه همه که این مطلب رو بگرمیه یه روز به خجر شدیه یه روزه مسادر تشریف از کنم بجرد در اصطلاح بسوری ها به دو معنی آمده بلکه با اصطلاحات بردی پیشتر به دو معنی یک معناش مصدر تشریفه یک معناش طرق اثباته طرق بسوده دو جور بجرد داریم ولی ازا همون کتاب های ما خیلی منظم نیست که تو برگستانه در این جهر منظم کرد اینا یک بخشش رو جبه مسادر به یک بخشش رو جبه مثلا ترو این ها و حفاظ و دلاته حفاظ و اینجور چیز هم. و از امس کردیم که اجماع ابتداعا اینطور شد از به بعدها مثلا در کوفه شروع شد مخالفت با صحابه کردن ها حالا صحابه این مختلف ما قبول قبول نتونی تقریبا این بحث مطرح شد که وجهی برای گردیت اجماع وجود نداره و در این جهر بله حاضر به اصطلاح اهمیت که اول شیعه هست که دار گردیت در قبول در قبول کتاب و صنعه در موقع به خدا حالا موقعه اجماع صحابه البته اگر صحابه واقعا اجماع و پرشون ا اما اونجایی که مسلم هست که همی رو نیست، اون رو حجت نمی لذا تدریجاً به این معنا واقع شد که مثلا اگر اجماعی مشتمل بر همی باشه مثلا اون رو و قول همی رو و حجته واقع و حجیتونه کم در بین شیعه مخصوصا چون احرسان منت اجماع رو ذکر می شیعه هم برداشت این مطلب رو مختلف کرد که اجماع بجاده اگر محسوم درش باشه اگر محسوم نر باشه نه به خاطره بود محسوم از کردیم این مردنا رو هم از بر سوم بوم داود درهی که در اطلاع مذهبی به نام ظاهری از مذهب ظاهری در امارو در فیون و فیون مالی فیون ها رو تحسیز کرد مردنای این شخص هم شد مثل ابن, ابن ه اینا هم معتقد شدن که اجماع رو نداره مثل شیعه لیکن اگر صحابه اتفاق کردن کاش از اون رسول داره. پس در دنیای اسلام کلا دو قول وجود داره که اجماع رو کاشف میدونن یکی شیعه محسوسا چون شیعه رو در هر زمان ما محصوم وجود داره باید از کاشف از گل ما محصوم باشه لذا اجماع در هر زمانی ممکن بود جید پیدا کن که اجماع و اتفاقشون یک شکلی باشه که انسان از او کشف به معصوم رو حالا سه طریقه معروف در کشف پس یکی طریقه لطف و یک طریقه دخولی رو دقیقه که دقیقه هر که به اون تحقیل نصفر داشته و از کلیمانش کنونش واقعیت علمی نداره اصلا با این اینطور مطالب بود این طور نداره لیکن به هر حال بنای اصولین شیعه برای این که اجماع منقولی که از افراد خبره به این که کلام امام تعریف کلام معصوم رو اگر علاوه بشه اجماع باشه و این که خبر حجیتی نیست لازم میاد به این که خود این خبر هم نباشه خود این خبر شاملش بشه لازم نید که این اجماع با جد نروشن و که شاید معلوم مستار واسه شروعی خب واضحه چون اجماع خبر واحد اون است که راویش به حد وصول و اطمینان نرسه به علم نرسه اما اجماع به حد وصول و اطمینان به ایل میرسه که کاش از قول امام بس اون نیست و این کشف میکنه که امام فرمودن به اخباری که در کتب شما هست در کتب علما هست وقتی که روابط تعریف کردن بونا عمل نکنید این موارد اینه بعدشم اجماع کاشف از خود امام همون زمان یعنی در هر زمانی بعد اگه شما بگین کاشفیت قبول نداری خیلی خب بحثو این کاشفیت رو نیست اگر کاشفیت رو خیلی درست بکنید نتیجهش این نیست مثلا لازم به خود این اجماع حجت نباشه علی حاضر اینو گفتن و سالسن انده اول اجماع علا عدم الخبر من و حجیت خبر معذها بالمشهور در خودم ها و متاخنی را حجیتی معلومتون که این بلویجان دروغ این خبر که ما بگیم اجماعا میشه شیعه خبر بوجود نیست چرا؟ چون مشهور قادم به خبر هستن و لعن در من خبر الواحض که کلام من از اجماع علا حجیتی علا مجیتی یه یه بحثی رو مطرح کردن که مخصوصاً روی این جهت که حتی ایشون بحث رو کامل نیرون اصلا نیروندن من کامل چون مرگون شیخ توسی هم ادعای اجماع کرده بر جهت خبر الواحض سید محزار و استاد قداره اجماع کرده بر عدم خودتی لذا یک بحثی هست که این دو تا رو بکنیم یا به طوری کنیم به تحبیشون منظرها به مشهور این دو تا اجماع رو چه کار بکنیم یکی از وزورشی اینه که اون خبری رو که شیخ توسی گفته خودجده یعنی خبر سره بسن. اون اجماعی رو که سره اون گفته گفته یعنی خبر واحد زریف بعد می‌شوند آوردن از محقق نامی که نه فی خبر واحد ما یقابر خبر المتواتر و محبوب بر قرن تلقیه مورد خبر واحدیه و ثانیه از خبر ضعیفی مقابل ماست و به یوچ میان القولین، اما تیم خبری میان القولین کرده در مورد دعوی می‌دهد. سید و مرتزا که اداری اجماع کرده و شیخ سوسی که اداری خیلی خیلی تحجیب استاد ایجادا خیلی مجمند بشن آن کارپنج ورده که هر به کلابان در بشن دیگه حالا آورتونشون مراجعه کنن چون خیلی مختصر بشون جمع کرده ان مراد المنتر به وجیه خبر الواده خواهد خبر و ذهیم و مراد رو قاهد به وجیه خواهد خبر و و موثب این طوری جمع کرده و یه شما دو بزاره که یکی دقیقش اینه که انده شهر تسوسی محکم میبیندن قائلین به اونجید خبران واضحه نه که قائله چون مدهیه شما هم هسته از قائل ذکر اکی مسئله خبرین و ترجیح احد محل الاخر کنن خبر الموجوب لا یقمنو به لرنه اون خبران واضحه چون خبر واحده احمد بشه میشه مورد از خبرواد ضعیر البته محشی این چار نوشته ذکر دارده که منها فی موارد ذکر دارده که فی موارد منها ها فی استفصال جدیه زیاده همچون خودشون اشاره کرده زیاده فهازا خبر ماهده دایه اومده به بر اخبار آها این عبارات رو زیاد داره توی استفصال تو هم داره که ایشون برمده توی هم داره به این اخبار به دا آها داره ازنه همه لطفی داده ای برده همه تحبیلی لو لطفی داده ای فجر آفیه ها در تعلیل علم فی خبر الواهد و علیه فرکون خبر الواهد الموضوع به کم آقام حضور کلام حجستن اجماعن از برسه از کردن یک مشکلی در گبارات این اصحاب تأخیر ما و الله مولا حتی سال استاد موجوده گاره میگه هم خبر مصوبه به که هم اینکه گفتن گاره خبر سخه یه بزنون ظاهرم مساوی وقتی ارز کرم نیستن خبر سخه در سالان مصوبه برمار این آمده چند جای دیگر در کتابای دیگر ما آمده است نمیخون برن یه خیلی شد که اعترام خیلی هستیم و یک نوع انسان احساس میکنه ام این راجع به یک مجلد. پس بنابراین این ایشون در این اجماعی رو که سیر و کرده سه تا اشکال کردن و در آخر اشکال هم جمع کردن بین کلام شیخ و سیر و متضار. حالا اس نبودن و نبودن سیر و که مراد اینه پس مرحوم شیل که ترموز همبر واحد یعنی اونی که موثر یا به بریشون مرسومون به و سر دو که خبر باوند وجد نیست یعنی خبری که ضعیفه رو با تا طبعا دیگری هم هست قدرین میل به جمعهای دیگر دارن که نسبت, نسبت هم یکی از جمعهای معروف همینه که گفتن مراد سیر مرتضی گفته خبر واحد حجت این است مرادش اخبار مخالفی بوده یعنی مراد سیر مرتضی بوده که مثلا گفتن آقای شو خبر دسته ای گویا هستند شما چرا اصلا نمیگویید گفته ما به خبر واحد اعتقاد نه و مرادش که به خبر واحد حجت مرادش اخبار طائفه است این روایتاتی که در معنای ح وجود داره این هم ایرادی جنبی که آمده در کلمات عزیز ذکر آمدن چندی واژ ذکر شده چون نقطه فنی خاصی نداره وقت آرونو به یه مطالب نمیگه پس در حقیقت اینطور طور مقاصد بگه سید مرتضا که خبر رواهی بود جدید در مقابل که همه به روات بخاری و مسلم نکن شیخ توسی هم فرمده خبر بود جده یعنی رواهی شیعه به این ترتیب ما بین این دوتا جمع از خب خب چه آور از این بزرگان اگر مراد این اول جمع خوب انسان در انتصار سیده مستدار نگاه بکنه وقتی که مطلبی رو زدیم کنه این مطلبی و مرگنی این بیاره خب مناسب بود که به احجابیس رو بیاره خب شون در کتاب انتصار این دیگه واضحه اون چی که نموی و دلیل نال اجماع از تو بیار اجماع رو است که ما مورد کردن این کتاب میارم هستان که این وجه و خلاصه کلمات مرحوم استاد هست کرده که در های گذاشته روشن شد اولا این مسئله که دروای اجماع شده این دروای اجماع بلاوشکا در مدر برداد و فرش شده اینجای بحث نداره و ما پس به مثلا همسال شهر توسی و مکتب قوم داشتیم که به خبر باهید قطعاً عمل می کردن لكن اهل سنت با مکتب قوم ما آشنا نبودن که اون اهل سنت طرف حسابشون بزرگان بغداد بود از کردن در مسائل حصولی در این برهی از زمان نشاط نشات واسع پیدا مثلا از از افواس حصولی مهم در حدی از اصول کلامی آمده مثل ابو الحسن بسین صاغرجو و دیگه الله ترک بحث اینطوری بود و ما در میان علمای خودمون از کسانی که در این درجه مباحث عقلی وارد بشند و هم مباحث کلامی و هم مباحث اصولی و ایضا مباحث نقلی شاید بزرگترینشون مثل فضل نشازان میدونیم رضوان الله تعالی که هم توی مسائل نقلی خوب روییتی داره خیلی خوب رزنگی داره و هم توی مسائل عقلی که ایشون دویست و شهست وفات ایشونه لکن به از زمان قیبت صغراب و مخصوصا توسط چهرهای علمی نصح زمان وقتی که فکر کرد کتابی رو نو تکلیف بنویسه و این و نمو جمع بکنه خب بلا اشکال خیلی مؤثر بود در وضع این کاری که شان در برداز انجام داد. شما حدود سالهای سی سال این ده این حدود انجام داده ما دقیقا این کار رو نمیدیم گفتیم کلی این تا خور کتاب تکلیفه و اگر کتاب هم نباشه بلا اشکال مدل اون کتابه عدمی ادبیات عدبیاد اون کتابه حالا مخاطب کتاب باشه احتمالش هست باشه بچه چون شواهیی که زید شده این کمه کار پنج مورد با این چهار پنج مورد راجبیم بخصم رو پسر کردیم اثبات یک کتاب نمیشه اما فرهنگ کتاب به با رضا فرهنگ کتاب تکلیف ما داره گفته شده یا تکلیف یا تکلیف فرهنگ این رو کتابه این رو نمیشه این کار کرد و این مسئله موجود شد که تدریجم در بردار این مطاله میگه در این کتاب بود جا بیفته بین علمای ما. این به لغازه فکر. هستم این زمینه های اجماع در فکر اینجاست در وقت دارن. در همون, در همون زمان شما در محتب بکن حصولا نشانه از اجماع در فکر نمیبینید. هر سرم اصلا شما در کتاب اتصال سه موزن هر چند بار اجماع داده با. دلیل رو علی شما ببینید یک مسئله مثلا چند صد تا با و شده و اتای فیجوریلا اگر دو تا سه تا مسئله بیارم همش دلیلش شما و شما کلمه اجماع رو یک بار در کتاب شهر صدون می‌بینید ببین دو تا قائم می‌گیم نه در اونجای اجماع می‌بینید در قم و نه در پیش صدگان شما اخبار رو بر همینطوری بیانند بهلا دلیل ایشان داره من اجماع و عرض کردیم که اینی که محقق بیروز اسکنیم گفت که ما در دل... ما عمل به انسان اول در دلیل برای انسان تو کلمات سر نور خوبه و خبر رو هم هر ما این کلام محقق به کلمات سر نور تازه میخوره. پس معلومه سر نور و بعد داوی ها نه خصوص رو سر حتی خود معلومی شکل موفق. از شکل موفق ما کتاب وسولی بازهایی داریم یه مختصر چند سری هست به نام تاسکری وسول فرد در کتاب کنز و فواله کراچکی در اونی که ها بیشون به وجود خبر نیست تو اونی شاید محصر به سیل همونتزا و این رایق در مکتب بغداد بوده همین رواجه و مکتب وغدادیه مکتبیست که انصافا خوب عقلیگردهی داره یعنی تمایلات و اعز کردیم این مراد مکتب دوم وغداده که با ورود کلیمی حدود سالهای سی دقیقاً نمی‌میونیم اما این حدود باعث باشه کشون به بغداد اومدن تا خروج شیخ طوسی از بغداد در سال 1450 تقریباً این مکتب دوم بغداد است این مکتب متکلمیست مکتب عقلگراست اصولا در دنیای اسلام نه فقط شیعه مکتب‌های عقلگرا به حجج خبر قبول نداشتن تعبد قبول نداشتند. این طبیعی بوده نه چیز خاصی نبودن اخیرا این پیش ما بود بله این بود و عرض کردیم هم چون که آمی در ذهنشون هست حتی سنیه ها که مکتب دوم وقت داده ما تقارب داره نزدیکی داره با مذهب اعتزال با مکتب اعتضار در همین میزان را به زهبی نوشته من حدود سن سلاسون و سب سل. این تقارب رفض و علی اعتزال این زمان شیخ مفیده خب اکی بعض من بعضی مستشنگ روزا بندسه مندسه کلامی شیخ توزید شیخ موفی علاوه کلامی شیخ موفی خب اینا تنگیشون بر که مثلا این مکتب وحدت تمایل به به اصطلاح اعتزال داره در مقابل البته ننوشتن را که انصافا هم همینثوره مکتب ابن هم تمایل به شاعره داره این دو تا مکتب از نظر ماهیتی متمایزند اصولاً طبیعت اعتضال که طبیعت عقلی گرایی و کلامیه یک طبیعتیه که تعبد رو کمتر قبول میکنه این در دنیا اهل سنت هم همینطوره مهمترین اشکالات بر بجت خبر واحد هم حصولا از طرف متکلمین شده و اختصاص به سید مرتضا نداره ابن ایدیس هم همینطوره ما یه خط مفسرین داریم امثال عبال فتوح رازی و همسال امین الاسلام و تبرز. اینا هیچ کدومی همسال کورسی و را ونده اینها می‌شوند که قلب وجود در خبر وجود است اینها خیال آیه‌هایی است که یه نفر ادای اجماع کردی همسال ابن زوره و حتی این کتابی که اخیرا در ایشان صادق شکنگر امیر است معروف الله محمد عبدالجید رازی ایشان قابل وجود در خبر نیست اتفاقش کلامیه ایشان ایشان در اسنای کلام یه بریک مناسبه که اون سونیه دسته وجود خبر رو مطرح می‌کنه. ایفون هم بیه جده خبر ثابت نیست اشکالاتی هست که در خلال این استدالا گفته میشه پس اجماع منقول که ایشون ادعا میکنن این ریشه هاش واضحه با رواج بحث های اصولی در بغداد و آمدن و کشندن مثلا ما اشیخ صدق کتاب اصولی نداریم پس پدر صدق کتاب اصولی نداریم با نه روشن است تا ما آمد با آمده پس ما دو تا شه در شیعه داریم یکی اجماع در فقه که این مفصل ایشون بحث نیست خیلی چند روز صحبت کردیم چند حری اون اجماع که شیخ طوسی هم تو خلاف اسرار المزا اسم اذه اسم این ریشه هاش در میگرده به کتاب فقرزاد یعنی نه کتاب فقرزاد در میگرده به کار حسین بن روح نو بختی رضوان الله تعالی می برای این که شیعه در زمان دیوز سهره در حیرت بودن و رفع حیرت پیشنهادی داد روزی های روزی مهم رساله توضیح المسائل مراشه. یه توضیح المسائل یه نیسته که بین قم و بعدها جمع بکنن و کار بزرگی بود کار خوبی هم بود انصافه. این زمینه دعاوی اجماعه ولی زا وقتی این کتاب این کتابیه از میندن وقتی آمد به اسم فخور از مکه اوگردن خب سرسده ایجاد در اقید نیازده هم که آن این کتاب باقیمان حضرت رضاست مثلا ادهی از احتواری همون مثل محدث بحرانی شروع که این کتاب باقیمان حضرت باشه چون خیلی از فتحا اصحاب ما ادعای اجماع بود و دلیل نداشته باید نداشته خیلی کتاب پیدا کردیم راسته نه، که ایشان پس این مطلب تحلیلش کرده. اون تحلیلش اینه که ما خواهد بید پس این مال نه این مال این برهه زمانی حسین روح نوبختی که جمع کرد بین قوم و بغداد پس اجماعات ما در فقر به اونجا به هم به. اجماعات ما در اصول وقتی که مسئله اصولی و مخصوصا بغدادی ما همین سنواتی که این گفته حرف بدی نیست این زهری حدود سی 370 هفتار سال. سی ساله هف سال چون مرموم شفه مفیس سی ساله چه؟ چهارسد سال سیده افاتشه که با صاحب همین مکتبه متقدمه سخته متقدمه به مکاتبه کلامیست چهارسد سی و شیش به لازه قرنری الان چهارسد و سی و ازار و, سال و, و دو سال دیگه زداره مرموم شه سهل مرتضی رو شه این شاید این اینجاع وازع برای وفات سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه همین حرفی که ایشان زده حالا جواز دیگرش بحث دیگه ش من نمیخوام وارد بشن حضور این مطلب همینه انصافش همینه اون وقت لذا چون شیعیه ای که اولا با سنی رابطه داشتن در بغداد بود ثانی متکلمینی که این کاره کردن در بغداد بودن قومی ها این کارو نکردند البته این در بغدار نه به معنی این, این مباحث و اصولی بیش ما نبود. ما همین مواحص سنگین اصولی رو یک قرن قبل از این در نیشا بود سید مرموم فضل و شازه ها به که ایشون در طلاق داره انصافا دیدنیه. ایشون متوفای 180 دادیه و هنوز وام عسکری زنده بودشون در حیات بام عسکری خوبش میکنه. مرموم فضل خب. مثلا در اون کتاب سعی میکنه خب زمان در نظر بگیریم سعی میکنه که فرق بقیه باب اجتماع هم نه باب باب نهیدر واضح نه. توضیح بسوری ببینیم به اصلا بیرس شده همون توضیح هم اصلاح در تراز منویم و آزیا و منواره کوری و دیگر را نگاه میکنم یعنی این سنخ مسائل رو. طبعا قوم در اونزام اهلین حرفا نبود شایدن میکرد چون واقعا برای من هنوز ابحام آوره که شخصیت بیدیم بزرگی که در نقل هم خوغراده است. ایشون ابن عمر در کرده صحفانه در کرده بزرگان از خواب در کرده عجبلای از خواب در کرده و خودشون مهد بزرگاهی این توقعه ما ما عادتا حالا که دور, دور دور هستیم خب قمتانه خراسان راهی نبود از خب میاندن بزرگان قربانه شون نقل حدیث میکردن از معمومه خیلی عجیبه. از قوم نهیمونه خدمتیشون خیلی جز اجایب کاره ما هنوز این پسمت تاریخ رو نفر احتمال میدیم به خاطر همین عقلیگرادی و مباری کلامی مردم فضل نشازان به الله تعالی لکه به طور کلی مبارس اصولی ما در جب به کلامی بغداد مطرح شد در اینجا که آمد مطرح شد به ما بزرگان اصحاب ما مثل شیخ مفید و سید مرتزا با اختلاف سریران یک نباف نیستن اینا قادر شدن که خبر بازر خود جد نیست الان که از کردن بعض از این مثلا معاصیم گفتن اینا که خبر بازر جد نیست بخاطر سنیا فکر نمی‌کنم اینطور بشه. طور این که در کتابه های اونها می بیریم خلاف این بطلع. و همها این ها این خط رائش محترف بردان و متکلمه بردان قائلشون در خبروائد وجد نیست و در وقت انتقال به کتب اصول اصول احسان نهد اونا تو بردان داردی بزرگان دارد. نیستن تو همین طبقات هستن تو بردان وقتی منتقل شد به کتب احسان نهد نمیشن شیعه قائل به خبروائد نیست الان در کتب و سلومی هم مستثبات دیگه خدا منش که خبروائد وجود هست و ذهب النظام روافض روافظ الارم. به روافظ نسبت میده که با قدری دعوای اشمانی در کلمات یک نفر آمده اصلا در کتب معروف اهل در تو بحث حجه به خبر واحد و شیعه جزء منکرینند مثلا روافض جزو منکرین و ذکر و ذکر واقعت النظر از این نکته تحلیلیم که خود ما دادیم اگر مراد از هجیت خبر هجیت تهبدی باشه که شارع فرمده و معیار داده اهل سنت اغلبشون قابل به این بودن که هجیت تهبدی و شارع معیار داده اقل عدده اینجا از اون فاسموندنه اگر مراد از هجیت اینه این بحث دعوای اجتماعی نیست این قطعی است یوزف از کردم. این قطعی است ما در قدمای از خواب ما حتی یک نفر نداریم خبر واحد رو به این معنا هدجت در این معنی کارخونی هدجتی آیا خوب یه خبر سلگ هم بوده ما یک نفر نداریم دعوای اجتماعی مگس در مورد ما یک نفر نداریم که در میان آن قدمایی که چون خبر عادله هدجت خود شیخ توسی اله ماشاءالله به خبر زعاف همه میکنه از خدید محوم شیخ توصی در کتاب خلاف اله ماشاءالله اون که این کتاب مبنیه بر اینه روش شیخ توصی در کتاب خلاف و استدلالات فقیه ایشان مبنیه بر جلد بزورد نه برهان. این توضیحات رو جهاز کرده متاسفانه در بعدی از کتاب طائفیش هم همینطوره ایشون از یک طرف ادعای اجماع میکنه در کتاب عده که مشایخ ما عمل به خبر واحد کردن از یک طرف هم که ایشون اینجا داده نه تو در حاشیه نوشت مواردی در, در استفسار و تهذیب میگه فإنه هذا من خبر واحد و الاخبار الاهاد لا و, و علما ولا عملا علما چون یه بحثی بود که اصلا خبر مفید علمه عمل یعنی حجت وای خبر واحدی علم آوره؟ و اگر علم آور نیست حجت هست یانه این اصطلاح همون زمان اینجوری بود لا یفید العلم ولا عمل قرر از اینکه ما تفسیرمون اینه که شیخ شاید درجا جنبه جدلی مثلا گفته می‌خواد بین خبر عمل نکنه این نکته رو اضافه کرده و الا ایشون بیا از معلومه آین آینی هم نار کرده که شیخ برجا گفته فنهو خلا تعدیل کرده درست این هست اما این با بقیه کلمات شیخ نمیخوره. انسجام نداره شا ده ها مورد ما مرسله ابن عبی عمر داریم در همین تحضیبیشون رو آورده و بهشم استدلال کرده مجموعا در تحضیب به سه مورده آقای خویم هم یه مورد یا دو تا شناب سه مورد یا چهار مورد در تحضیب هست میگه اولا مافی آور خبر نه ها مرسلا اون تو تحجیب آوره خبر مرسل رو هست مرسل ابن عبیان رو هست میکن آقای کویه خدا بیره ه یشون ده هم اورده کیشون مراسی لذت نمی آورند. بیش استدلال می کنه مرغوشی را اون رو نمی بینن. یک دو مورد سه مورد من به نظرم در کل تحسیب دیدم به نظرم یادم نیست. با این کامپیوتر میشه پیدا که میگه و اول ما مافیاهای خبر نامور سردم. آیا خودیم همیشه اورده که مرغوشی شی خم به مراسی لذت نمی قبول نداشه. خب سعیم ده هم اورده، ده هم اورده نیستم. ده هم اورده دیشون داد که خبر نعوی اون بودن مقام استدلاع و فتوا هم بهش داده یکی به نیست علایه آمانه این که از شیخ دوسی مطلبی رو بردن این مطلبیشون درست نیست پس بنابراین مطلب دعوای اجماع این در خط متکلمین و مفسرین ما هست درسته فقهای های ما که متکلم بودن این هست و اینا اعتقادشون این بود که و هم ما به این معنا چون اهل سنت خواهی بودن ما حجیت خبر عرض داریم تهم بودن بیدیم معنی هیچ یک اشیعه قایل نبودن و این که امثال ابن ادریسی راستی گیم یعنی مرادشون از دفعی حجیت این معنی مرادشون از دفعی حجیت این معنی این, این مطلب اینا درست دید. اون اونو حجیت تعبودی که مصطلح بوده در کتاب اهل سنت قطعاً علمای شیعه قایل نبودن این تاکید احتمالی نیست. بله یواشواش از قرن 80 الهام بحث صحیح مسأله است که گفتیم توضیح داره. قرن مثلا دهم ده هم مثل صاحب مدارک فقط به خبر صحیح عمل میکنه این معنای صاحب مدارک در قرن دهم ما در قدمای اصحاب یک نظر نداریم یک نظر آنها دقت دارم نه اینکه مجازانه ازش بونه. یک نفر از قدمای اصحاب معنای ایقویی یا معنای صاحب مدارک صاحب مدارک به خبر صحیح عمل میکنه. که راویش عدل امامی باشه واو به خبر ثقه حالا امامی باشه نه باشه عدلم باشه باشه و ادعای تعقل داره هر دو ادعای تعقل هیچ ما یک نفر در خدا هم نداریم میگید مبنا عمل کرده باشه پس حالا این این راهایی رو که ایشون فرمودن روشن نیست این که شیخ گفته به مخصوصی موضوع باشه میشه بین جمع کرد اینطور قائلا فند صلوات الله علیه و آله یعنی به این کلام صحیحه شیخ هم شیف و سید بار و شیف شیف